دوست کلمه رو بیت اولد حالت پروازی طرف پینک فلویید وایس او بگم یا دوستش گفت بیت صد صد به قشور کینگت قفله کلمه رو بیت اولد حالت پروازی طرف پینک فلویید وایس او بگم یا دوستش گفت بیت صد صد به قشور کینگت قفله زن بگی تیر تو کلتت هی hey, نگاه به جیب لخته یه سر خطی خود نخته ای میبره اونی که تو شیب تنده وقتی قلم و کاغذ با هم مشغول شدن من هم کردم خودم و مسئول تو رب که امثال شما جل و بودن ما تو جایم بودیم و اینا همه مشمول هرات سخت و چرختم چوب نیکشم سفیدی بالا ریم خون ریخته ستب از دزم فم تو رو مزه پیچ با مش رو کلام رو بیت بوده حالت پروازی بازی تر از پینگف لویده یه دوستش گفته سال سوی قاشق و <تصفيق> گفته کل رو بیت الته حالت برگزی طر پینف لویده باثابق گم یا دوستش گفت پرثابق سا, قشور و کیکت قفله ما ضرف ندونین به پلک دورمون داف اینو هم خیابون میدونم می خدا پوک تو پک بک تو بک بی سر و صدا بزنی کج میشی واقع اینه اددا ما اگه بخوام ببرم ببینی از اون بالا که نه این خانم میمونه مونه برات نه اون آقا اگه یه عاس بیا تک میگ شو به چش که جلو پول کسی ترم پرو و پاکاضه میره گاهی تند از اینش رو منم بوم تو سینمه سول قضیه رو بدی چون ما شد رنگ سیاست فیده میدی به سر خواهد گل نرسی سر وقتی یه موردم میخوام بگم بیرونه بس به میدونن میدونم ست بلکه با دوتو بیتم پاره میشن میگی با دو دوتو بیتم پاره میشن میگی سه ستاد کلمه رو بیت، ولت، حالات پر و زی تر از پنگف، یا دوستش گفته، صد صوّت کش بر کینگت، و فلپ. کلام منو بیت، ولت، حالات پر و زی تر از پنگف، لوت، یا دوستش گفته، صد صوّت کش کینگت، و فلپ. سوت رپ سه. هاهاها. پس.